چه جالب؟ دو طرف جاده یا مزرعه است یا جنگل؟ درست است. من جنگل های اینجا را خیلی دوست دارم. کی به اردبیل میرسیم؟ ساعت پنج. خسته شدی؟ نه. اینجا بسیار زیبا و سرسبز است. خسته نمیشون. بله اینجا سرسبزتر از تهران است و هوا هم خنکتر است اینجا شهرها به همدیگر نزدیکترند به خاطر هوای خوب شهرها و روستاهای زیادی در اینجا هست آنجا را ببین؟ گاوها و گوسفند های زیادی نزدیک جاده هستند دامداری یک کار مهم برای مردم روستا هاست این گاوها و گوسفند ها مال مردم همین منطقه هستند؟ بله فکر می کنم. دامداری در ایران سنتی است مردم روستاها گاو و گوسفند دارند ولی دامداری مدرن هم داریم